おきこそき یا اواز روز سیوم ماه ششم روز جشن سومییوری در بندر اونومیچی چیست؟ به این خاطر در روستای کوباتاکه برای جلوگیری از بلایای آب به پیشگاه خدای سومییاشی نیایش و دعا می کنند و جشن رها کردن فانوس را در آب انجام می دهند. برای پیشگویی چهار فصل بهار، تابستان، پاییز و زمستان در شندانی چهار گوش از چوبی ساده و جلا نخورده شام روشن می کنند و آن را به سمت قسمت های عمیق رود داخل دره شناور می کنند. گفته می شود هرچه این شم ها بر سطح آب تیره بچرخند به بهتر است. برای مثال اگر شمدانی که بر آن کلمه پاییز نوشته شده زودتر برود امکان سیل در پاییز وجود دارد. امروز وقتی شیگه ماتسو آتش زیر حمام را روشن کرد چی برای رساندن نامی پیشتاز برای یاسوکو آمد. آن موقع یاسوکو برای رساندن پیغامی به شهرکش این ایچی رفته بود. فرستنده نامه آونو گنتارو از روستای یامانو بود. او خاستگار یاسوکو بود و برای اولین بار بدون واسطه با یاسوکو ارتباط برقرار می کرد. نوشته های روی پاکت بسیار معدبانه نوشته شده بود. شیگماتسو فکر کرد مشکلی نیست. این نامه را رو روی میز یاسوکو باگذار نمیدانم چه نوشته اما اینجور نامه فرستادن نشانی از تمایل خواستگار اوست و همه چیز رو به راه است شیگه ماتسو نامه را به هم سرش داد آتش زیر هممام را به همان حال رها کرد و وارد و اتاق شد میخواست سریع رونویس یاد های بمباران اتمی را تمام کند بدون اینکه برای دیدن رها کردن فانوس ها در آب برود رونویسی را ادام روز هفتم ماه اوت، هوای آفتابی وقتی چشم گشودم مه صبحگاهی که از پنجره بدون شیشه داخل می شد گونه هایم را نوازش می کرد. مهی قلیز بود در گونه چپ و در گونه راستم قلزت مه را به یک اندازه احساس می کردم فکر کردم آیا گونه چپم که سوخته بود خوب شده همسرم و یاسوکو قبلا از خواب بیدار شده و بسترشان خالی بود سر و صدای افراد بعد از گذشتن از مه به گوشم رسید این کامیون یک یا دو نفر دیگر سوار شوند اینقدر لفتش ندهید پنج و نیم شد صدای کلفت و گوش خراشی به گوش می رسید ظاهرا دیشب بعد از اینکه من خوابیدم تعداد زیادی زخمی از هیروشیما به اینجا آمده بودن با توجه به اظهار نظر دیشب رئیس کارخانه برای اینکه کارگرانی که زخم سطحی داشتند به زادگاه خودشان روانه شوند کمک از حدود ساعت 5 صبح امروز شروع می شد و دو دستگاه کامیون مورد استفاده قرار می گرفت. پناهندگان و بار آنها را تا ایستگاه فروی چی رساندند؟ اگر در ایستگاه یا کنار راه افرادی از شرکت من افتاده بودند که زخمی عمیق داشتند آنها را هم سوار می‌کردند خواستم از بستر بلند شوم. بدنم را حرکت دادم اما کتف، پاها و لگنم طوری درد می که انگار پاره شده بودند با درد خستگی فرق می کرد خواستم از حالت پشت به پهلو برگردم اما بسیار سخت بود فکری کردم با دست راست شلوارم را از روی باسن گرفتم کشیدم و بدنم به پهلو شد بعد بدنم را جمع کردم باسنم را بالا دادم دو آرنجم را بر زمین گذاشتم و کمی هیکلم را بلند کردم شبیه برخاستن کسانی بود که از لگن علیلند با فشار به یک آرنجم دست دیگرم را راست کردم و بلند شدم وقتی یک آرنجم به زمین بود کاملاً حالت کسی را داشتم که در رقص ژاپنی از زمین بلند می شود آیا آن رقص ژاپنی کسانی نبودند که از لگن معلول بودند؟ به هر حال روی دو زانوی ایستادم یک دستم را به چارچوب پنجره گرفتم و بلند شدم در حالی که دست دیگر به کمرم بود وقتی به بدنم فشار می آوردم در انگشتان پایم درد می پیچید حرکت که می کردم انگاری سوزن لگت می کنم درد داشتم اما نمی شد حرکت نکنم با تکیه بر چارچوب پنجره چند بار رفتم و برگشتم وقتی ماهیچه هایم عادت کردند دستم را بلند کردم سرانجام توانستم راه بروم در حالی که شلوار و پیراهنم را تن می کردم، اندیشیدم خوابیدن چه خوشبختی بزرگی است. آرام آرام احساس کردم که شایسته خوابیدن هستم که زیر شکمم شروع کرد به درد. از پله ها به پشت پایین آمدم. چون وزن روی چهار دست و پا تقسیم می شود این روش راحت تر است. حتی کودکان هم این نحوه پایین آمدن را می شناسند. وقتی به توالت رفتم، درد زیر شکمم برطرف شد. درد کتف و کمرم هم تا حدودی کمتر شد. اما در راه رفتن انگشتان پایم هنوز درد داشت. تا کفشکن رفتم و نگاه کردم. کار کمک رسانی خوب پیش می رفت و فقط بیست نفر باقی مانده بودند. همگی روی پله های سنگی ورودی کول پشتی و بارهای بزرگ خود را گذاشته و منتظر برگشتن کامیون بودند. فکر کنم آن وسط یک نفر با گفتن من دیدم، من دیدم، ناگهان به سمت فضای باز رفت، تک کاغذی را گرفت که رقصان از آسمان فرود می آمد. آن چی هست؟ اسکناس ینی یا دهینی؟ آن تک کاغذ فقط قسمتی از کاغذ سخته نط موسیقی بود. کاغذی که احتمالاً هنگام حمله هوایی، دیروز از کلاس درس مدرسه ابتدایی یا از جای دیگر به هوا برخواسته در حال سوختن در آسمان رها شده و بعد از یک روز و یک شب سرگردانی اینجا فرود آمده کنار نوت‌های موسیقی گیلاس گیلاس در آسمان آبی نوشته شده بود رئیس کارخانه آن را در دست گرفت و نگاه کرد با گفتن اینکه عجیب است هست واقعا چی هست آن را در جیب شلوارش گذاشت وقتی کامیون آمد آخرین گروه آوارگان رو به رئیس با گفتن سلامت باشید خداحافظی کردند. رئیس هم تا رفتن کامیون با گفتن جنگ ادامه دارد به سلامت بروید دستگان میداد اکنون این دیگر تو خالی بود. افرادی که خانواده خود را در هیراشیما گذاشته و تنها به خوابگاه آمده بودند نه تنها هیچ خانهی برای برگشتن که هیچ راهی هم برای جستجوی خانوادهشان نداشتند جستجوی آنها فقط فرسه زدن بود. من با قسمت مهندسی تماس گرفتم و گفتم الوارهای به پهنای ده سانتی متر و درازای حدود دو متر باریدند. محل استقرار فعلی این آوارگان را بران نوشتند و این الوارها را در بقایای سوخته خانه هر کدام از آنها در زمین فرو کردند. اگر برای هر نفر یک تخته لازم باشد، حدود پانزده تا شانزده تخته کافی بود. اما کارگر میانسالی گفت در خانه پدربزرگ و مادربزرگم هم, هم این را نصب کنید و خودش سه تخته اضافی برید با توجه به حرف های یکی به نام اودا به نظر میرسید آن کارگر میانسال اصلا پدربزرگ و مادربزرگی ندارد اودا کیوساکو برای گفتن این موضوع به دفتر من آمد و وقتی سرانجام داشت آنجا را ترک میکرد گفت ترویج ایدال های کامیابی مشترک شر فقط افسایش بیوههای جنگی کاهش مردان جوان و ظهور شر بد اجناس بود با اینکه میدانستم انگشت پایم درد میکند اما کی و کیوساکو را دنبال کردم و به او هشدار دادم چون این شایعاتی را که نشان دهنده شکست در جنگ است مخفی نگه دار. فکرش را هم نمیکردم بخواهد مقابلا فکر شکست در جنگ را بیان کند بعد از نهار وقتی داشتم فهرست اسامی را تهیه کردم، گفتن یکی از کسانی که جراحتی سهمناک داشته مرده. کارگری حدوداً پنجاه ساله به نام نونومیا و عجل آمد و این خبر را داد. با دردی که او را دیوانوار به چرخیدن واداشت، قلپ قلوپ مایه زرد رنگ استفراغ کرد و خیلی زود هم از پا درآمد. شخص مرده 50 ساله و از کارکنان بخش امور بیرونی شرکت بود. به نظر میرسید هنگامی که از خانهش در داخل شهر هیروشیما خارج شده بود، بمباران شد. گونههایش خاکستری شده و ورم کرده اما بینایی و شنوایش ضعیف نشده بود. برای ساخت سریع تابوت با قسمت مهندسی تماس گرفتم. برای دریافت راهنمایی‌هایی درباره نحوه ریز کردن امور کفن و کارگری به نام فوجیکی را با یادداشتی به شهرداری فرستادم. همچنین برای درخواست پزشک و راهب بودایی آقای نونومیا را به شهرک فرویی اعزام کردم. طبق گفته های این دو نفر بعد از برگشتن شهرداری بسته بود و قسمت مشاوره آن هم از دریافت یادداشت داشته فوت خودداری کرد. پزشک هم برای جستجوی فرزند خود به هیروشیما رفته بود و نبود. پزشک دیگر هم برای عیادت از فردی که جراحت سهمناکی داشت رفته بود. راهب بودایی هم به علت بودن سه جنازه در معبد نمی توانست از آنجا دور شود گیج شده بودم که چه کار کنم بعد وقتی داشتم با آقای فوجیتا رئیس کارخانه مشورت می کردم نگهبانی که برای کاری بیرون رفته بود برگشت و گفت در همه جای ساحل رودخانه دود سوزاندن جسد مردها بلند است محل سوزاندن جسد درست کرده بودند اما اتاقی برای انجام تشریفات نبود صد درصد زمان خاص و بحرانی بود و برگه معاینه متوفا و اجازه سوزاندن جسد لازم نبود درباره سند سبت خانوادگی و غیره چون حوزه غذایی شهرک فرویچی با شهر هیروشیما فرق می کرد، حتی در مواقع معمولی هم برای انجام تشریفات اداری باید زمان زیادی صرف می شد. با توجه به اینها برای راست و ریز کردن امور کفن و دفن باید دقت لازم را می‌کردیم. سر خود نمی‌توانستیم کاری انجام دهیم. پس برای انجام تحقیقات کافی، رئیس کارخانه یکی از افراد بخش عمومی را به شهر فرستاد. رئیس کارخانه هم مانند من سنی ازش گذشته و با اینکه جایگاهی نیمه رسمی داشت، اما بیش از کارمندان دولتی نسبت به قانون سختگیر بود. انگلیسیش خوب بود. بیشتر نظریه پرداز بود تا عملگرا. ظاهرا پایان نامه دبیرستانش را درباره مخترعی به نام ریچارد روبرتس پدر دستگاه خودکار تابیدن نخ نوشته بود کارمند بخش عمومی برگشت و حرفش این بود که حتی پلیس هم از سوزاندن ها در ساحل رودخانه جلوگیری نمی‌کند دلیلشان این بود که از لحاظ بهداشتی آنجا انتخاب شده است از طرفی کسی هم وجود نداشت که برای مرده گواهی فوت بنویسد حتی اگر گواهی فوت هم بگیری جایی وجود ندارد که آن را بخواهند و بگیرند. جنازه ها در آن گرما زود فاسد میشدند و در جایگاه های سوزاندن اجساد هم ازدهام وجود داشت و نمی شد از آنجا استفاده کرد. بنابراین تا تنور گرم بود باید نان را چسباند و در ساحل رودخانه یا کوه یا جایی با فاصله از خانه های مسکونی جسد را سوزاند. رئیس کارخانه مدتی فکر کرد و گفت هرگز آنها را در خاک دفن نمی‌کنیم. دفن کردن یا سوزاندن علیه است که از زمان‌های قدیم سیاستمداران بزرگ آن را تعیین می‌کردند. ما باید از رویه ملی تبعیت کنیم. شرکت ما هم در ساحل شنی جنازه را خواهد سوزاند. سپس انگار می‌خواهد چیزی اضافه کند با لحنی جدی به من گفت: آقای شیسوما، اما فقط سوزاندن نیست. او را روی دوش ببرید و بسوزانید. بی تشریفات شاید برای مرده احترامی باشد من به ابدیت روح باور ندارم اما فکر میکنم مرده باید با احترام دفن شود آقای شیزوما به جای راهب شما در سفر مرده سوت را تلاوت کنید در پاسخ به رئیس گیج شدم حتی دستور رئیس هم دلیلی نمیشد که من سوت را تلاوت کنم امکان ندارد. این جوابم بود اما رئیس گفت بعد از این هم احتمالاً یکی بعد از دیگری مرده خواهیم داشت پس به معبدی بروید از سوتراهایی که هنگام سوزاندن جسد تلاوت میشود یادداشت برداری کنید و بیاورید فقط این نبود علاوه بر این تذکر داد چون در هیروشیما پیروان فرقه بودایی شینشو زیاد هستند از سوتراهایی که در مراسم این فرقه خوانده میشود هم یادداشت برداری کنید و بیاورید اما آقای رئیس من نمی توانم بپذیرم هر چقدر متر هم بیاوریم من شایستگی راهنمایی مرده ها را ندارم در زمینه دین بودا من کاملا مبتدی هستم می گویی چه کسی شایستگی راهنمایی مرده ها را دارد هیچ فرقی بین مبتدی و حرف ای نیست خواندن را مقابل مردگان به دست مبتدی ها با تجویز دارو برای بیمار توسط مبتدی ها متفاوت است از لحاظ قانونی هم نمی نمیشوی. اما اگر تو آداب فرقه شینشو را دوست نداری با فرقه زن یا فرقه نیچیرن هم انجام دهی خوب است میدانم خسته کننده است اما باید این دستور را اجرا کنی از مخالفت بیشتر خودداری کردم برای خارج شدن با شکمایل رسمیتر، پارچه ضد حملات هوایی را روی دوش انداختم برای جلوگیری از درد انگشتان پاتابی قدیمی پوشیدم که از رئیس امانت گرفتم. در آشپزخانه کفش حسیری پوشیدم و وعازم شهر شدم. میدانستم در شهرک فروی چی چندهایی معبد بودایی وجود دارد. در آن بین به معبدی سر زدم که راهبی جوان داشت و گفته می این راهب با نمرات عالی از دانشگاه الهیات فارغ و تحصیل شده است. پیرزنی به استقبالم آمد و گفت که راهب اعظم معبد به خدمت اجباری فراخوانده و به واحد سپید دم وارد شده است. بعد به معبد فرقه شینشو سرزدم زدم که راهبی پیر و راهبی مسئول امور داخلی داشت. راهب پیر به علت پیری و ضعف در بستر و راهب دیگر برای شرکت در مراسم تدفین بیرون بود. کسی که به استقبالم آمد زن میانسال نه سختگیری بود. که درخواست مرا به پستو برد برگشت و مرا به اتاقی راهنمایی کرد که راهب پیر در آن خوابیده بود آنجا اتاقی با وسعتی دو برابر یک اتاق هشت تاتامی بود درون پشه‌بند سفیدی که برای بچه‌ها استفاده می‌شد راهب به پیر به پهلو دراز و لحافی نازک رویش کشیده شده بود بیراه نیست اگر بگویم لحاف کاملا صاف بود و برآمدگی نداشت شoji کشیده شده و باز بود در چشمنداز باغ سنگیی که چند سنگ در آن گذاشته شده بود کدوهای تخم کاغذی بسیار رشد کرده بودند راهب پیر وقتی جزئیاتی را که شهر دادم شنید با صدایی چون گریه پشه به زن میانسال گفت آن سنگی کای، کای گیوگه و سنبوتسوگه و بعد هم آمیداکیو و جملات حکاتسوره زن برخاست و وقتی از اتاق کناری آنها را آورد، راهب گفت، آنها را به این شخص نشان بدهید. هرچند صدایش مانند گریه پشه بود، اما زن همانطور که به او گفته شد، حرکت کرد و نشان داد. این پنج متن مقدس چاپ چوب بودند. وقتی من رونویسی از آنها را شروع کردم، راهب پیر با کمک زن بلند شد و دو زانو نشست. زانوهایش نحیف بودند واقعا خسته نباشید گفتن اینکه که هیروشیما محف شده ترسناک است واقعا همه چیز هرچه میگویند انگیز است تا حدی صدایش محکمتر شد من از رونویسی دست کشیدم و باغ را نگاه کردم کدوهای تخم کاغذی قرمز می درخشیدند چاری شدند معنای مطنه ها را نمی فهمیدن. اما جوری که آهنگ آن حفظ شود و قابل خواندن باشد در کنار نوشته ها حروفی می نوشتم در سنگ کای جیکی ایووتسو توگان شجو تایگ دایدو هتسومو جوئی نوشته شده و کای گیوگه هم آغازش مجو جین, جین می میونو یا کسن منگانان زگو بو جملات هاکوتسو جملات ژاپنی زیبایی بودند که وقتی آنها را می‌خواندم به قلبم نفوذ می‌کردند. هنگام مراسم سوزاندن جسد، پیروان فرقه شینشو به ترتیب سانگیکای، کایگیوگه و سانبوتسوگه را تلاوت می‌کنند. بعد، آمیداکیو در سه جهان گذران است که وقتی تلاوت می‌شود، حاضران بوی سوختن را احساس می‌کنند. بعد جملات آکوتسوست که آن را نه به طرف بوده ها که به طرف حاضران با صدای بلند میخوانیم راهب پیر برای دادن سرمشق خلاف انتظارم با صدایی محکم سانگی کای و کای را از برخاند. من هم با تبعیت از تلفظ او در جاهایی از رونویس خود تلفظ را اضافه نمودم. راهب پیر همچنین جملات آکوتسو را هم از برخاند. اتاقی بسیار ساکت بود که در آن هیچ صدایی وجود نداشت. من قدرت راهنمایی مردگان را نداشتم، اما اندیشیدم دست کم با احساس دعا و نیایش در برابر بودا برای آنها سوترا خواهم خواند و برای روح مردگان طلب خوشبختی خواهم کرد. فکر کردم اگر با قلبی صادق سوت را نخوانم بیفایده است. فضای آن اتاق ساکت این احساس را در من به وجود. در برگشت از معبد، در حالی که یادداشت ها را نگاه میکردم کردم، تلاوت سوتراها را تمرین کردم. یک شب را با تکرار آنها گذراندم. وقتی به شرکت برگشتم، مقدمات خارج کردن تابوت فراهم شده بود. فقط سی نفر در اتاق پذیرش مفروش به تاتامی خوابگاه جمع شده بودند. تابوت روی سکوی سخنرانی گذاشته شده و در سطلی که بیشتر شبیه با بازی بود، خاکستر ریخته بودند و بخور میزوزندند یک شاخه درخت ساکاکی هم در ظرف ساکی قرار داشت آقای فوجیتا رئیس کارخانه با کتی رسمی آمد قبل از اینکه تلاوت سوتراها را شروع کنم روپوشی رسمی پوشیدم که از کارگری به نام فوجیکی امانت گرفته بودم مقابل تابوت که نشستم از کردم اندکی از اولادم گرفتند اما متن را نگاه کردم و تلاوت سوتراها را پیش بردم. به افرادی که نشسته بودند توجه نداشتم. اما این گند دماغی نبود، بلکه احتمالا یک حس بیخیال شدن بود. دو یا سه بار در خواندن اشتباه کردم تا سرانجام خواندن سانگیکای و جملات هکوتسورا را تمام کردم. در پایان رو به جمعیت یک بار تعظیم کردم. رئیس کارخانه گفت خسته نباشید. همگی با گفتن خسته نباشید و خیلی متشکریم تشکر کردند. یک بار احساس کردم صورتم داغ شده است. نمی توانستم آنجا بمانم. از میان جمعیت رد شدم و به دفتر برگشتم. کمی بعد به من خبر دادند که مرده دیگر داریم. وقتی هم برای ساخت تابوت با قسمت مهندسی تماس گرفتم مطلعم کردند که آنجا هم یکی مرده است. وقتی قرار دادن مرده در تابوت تمام شد برای تلاوت سوترا را رفتم و به نظرم رسید در تلاوت سوترا را پیش رفت کردم. تا نزدیک غروب سه تا چهار مرده داشتیم. برای یکی دو نفر اول هنگام دادن خبر میگفتند آقای شیزوما تقاضا می سوترا را تلاوت کنید. اما بعد آن کمی غیر معدبانه تر می گفتند آقای شیزوما مراسم است بیایید. با این همه وقتی اینجوری میگفتند احساس راحتی بیشتری داشتم. چون چوب برای ساختن تابوت تمام شد، چاره ایجاز جز تلاوت سوترا مقابل جنازه نبود. روی صورت مرده پارچه ای سفید میگذاشتند. اما چهار دست و پای مرده که تغییر رنگ خاصی داشت، آشکار بود. حتی اگر این هم نبود، پارچه ای که به دست و پای جنازه میپیچیدند با خون سرخ چرکینی آغشته میشد. پیش از این بعد قرار دادن جنازه در تابوت سوت را تلاوت می کردم. به همین دلیل وقتی قرار شد رو به روی قرار بگیرم و سوت را بخوانم، فکر کردم شاید مشکلی پیش بیاید. اما فقط به متن نگاه کردم و خواندم و مشکلی پیش نیامد. رئیس با گفتن اینکه به من فوسه بدهند، مرا دست می اندخت. با اینکه رئیس برای شوخی می گفت، اما خانواده متوفا یا پرستاران همراه او، واقعاً فوسه در پارچه میپیچیدند و میآوردند فوسه جنس و پولیس که در قبال خواندن سوتراها به راهبان بودایی پیشکش می شود این کارها را نکنید وقتی این طور میگفتم برمیگشتند و با چهره جدی جواب میدادند اگر آن را قبول نکنید حضرت بودا ظاهر نخواهند شد کارکنان زن به نوبت برای شنیدن تلاوت سوترا من میآمدند سه نفری هم گفتند جملات اکسو را برای رونویسی به آنها بدهم. وقتی پرسیدم برای چه می خواهید رونویس کنید جواب دادند جملاتش عالی است. بعد هم گفتند: «میخواهیم حفظش کنیم. ما انسان ها امروز هم بی آنکه بدانیم، فردا هم بی آنکه بدانیم. ادامش را می حفظ کنیم. در زمان فراغت از تلاوت سوتراها، چون این بازدید کنندگانی خوب بودند. اما ملاقات کنندگانی که برای صحبت درباره وضعیت بمباران می آمدند درد سر و گرفتاری داشتند. حین گفتگو به تدریج احساساتی می شدم. موهای سرم سیخ می شد. ریشه موهایم شروع به سوزش می کرد و دلم می خواست. زودتر از آن وضعیت خلاص شوم. برای این که آن احساسات نفرتنگیز بودند یا ترسناک. نمیتوانم توانم کلمه ایمانا پیدا کنم. فقط باید از آن خلاص می شدم. تکرار یک نواخته آنها چنان احساسی را به وجود میآورد غروب که هوا کمی تاریک شد به اتاقی در طبقه دوم رفتم که هیروشیما از آنجا دیده میشد متفاوت با همیشه روشنایی نورها به چشم نمیآد فقط از خانه های مسکونی سمت شرق روشنایی محوی میتابید آن نور آدم را دلگیرتر تر می کرد. برعکس سمت تاریک احساسات را فرو می‌نشاند با مراسم تدفین یک روز دیگر شب شد روز هشتم ماه اوت آفتابی گرمای طاقت فرسا از دیشب اقامتگاهمان تغییر کرد از اتاقی که از رئیس کارخانه آقای فوجیتا کرایه کرده بودیم به خانه ای کشاورزی در فاصله یک بلوک از کارخانه جا, به جا شدیم. صبح با صدایی که از ایوان خانه صدایم میزد چشم گشودم از روی تخت که نگاه کردم، کارگری به نام اداغاوا گفت دیشب دو نفر مردند، در صورت امکان لطفا زودتر بیایید. این را گفت و سریع به سمت کارخانه برگشت من را کاملاً یک راه فرض کرده بودم. ما با لحنی زمختر نسبت به یک راهب با من حرف می زدند. برای آماده شدن کاری انجام ندادم. فقط صورتم را شستم، صبحانه خوردم، به کارخانه رفتم و بالاپوش رسمی آن کارگر را امانت گرفتم. آنها هم برای مراسم تطفین آماده نشده بودند. تا تلاوت سوتراها تمام می شد، سریع جنازه را برای سوزاندن به ساحل رودخانه می بردند. اول، با خود عهد کرده بودم با صداقت تمام سوت را تلاوت کنم اما حالا نمیتوانم بگویم که با تمام وجود برای تلاوت سوت را خارج می شدم وقتی به خوابگاه کارخانه رفتم و نگاه کردم دیدم دختر بزرگ کارگری مرده بود که دیروز خودش دفن شد در خانه خودشان در شهرک تنمای هیروشیما بمباران شده بودند مادر دختر مرده سوخته و تمام بدنش ورم کرده بود ظاهرا هنوز هم هیچ نمیفهمید خواهر کوچکتر به نظر نمیرسید زخمی داشته باشد اما انگار دچار اختلال حواس شده باشد با دهان باز نشسته بود وقتی با گفتن خیلی سخته است احوال پرسی کردم فقط گفت بله و احساساتش فرقی نکرد گریه هم نکرد دلتنگ هم نبود مورد لباس سفید ژنده ای داشت. به پشت خوابانده شده و روی برامدگی پستانهایش و بین آنها دو سه شاخه علف هرز گذاشته بودند که از شالیزارها چیده بودند. گلهای زرد کوچک این علفها پلاسیده شده بودند و به نظر می رسید از اشک خیز شده باشند. احساس دل تنگی کردم. سنگیک را خواندم و در ادامه وقتی جملات ها کتسو را خاندم صدایم گرفت تلاوت سوتراها که تمام شد، یکی از کارگرها به خواهر کوچک گفت، برویم خواهر بزرگت را بسوزانیم. دختر فقط گفت بله و صورتش را به چپ و راست داد. مادرش هیچ حرکتی نکرد. تشیه ای بود که هیچ کس از اقوام خونیش حضور نداشتند. افراد شرکت کننده جنازه را با زیراندازی حسیری به بیرون بردند، برگاری گذاشتند و آزم شدند. من هم دنبال آنها حرکت کردم. در دو سوی ساحل شنی رودخانه جایگاه های سوزندن مرده دیده میشد. در بالا دست و در پایین دست رودخانه همه جا دود بلند بود. جاهای تازه هشگ گرفته بود و می بقایای مانده از سوختن نیز بود که آرام دود میکرد. گاری که دنبال آن حرکت میکردیم بالاتر از ساحل رودخانه ایستاد، و چند نفر از کارگرها پی جایی برای سوزاندن جنازه رفتند کسی که به سمت بالا دست رودخانه رفته بود صدا زد هی hey, آتش این حفره خاموش شده استخانهای آن را هم قبلا جمع کردند بسیار خوب آنجا می سوزانیم مرده را از گاری برداشتند و به آنجا حمل کردند وسط حفره دو سنگ به قطر حدود سی سانتی متر قرار داشت جنازه را روی آن سنگ ها گذاشتند زیر او و کنار دستش زغال سنگ های را قرار دادند که با دو سطل آورده بودیم. بدنش را با چوب های شکسته و چوب های, های قدیمی پوشاندند و صورتش را هم با تراشه های چوب. دو طرفش هم الوار چوب گذاشتند. آخر هم هسیر نمخورده و زیرانداز حسیری را دور او پیچیدند و به این ترتیب مقدمات تمام شد. از شکاف های پیچیده شده مو و پیشانیاش دیده میشد صورتش هم به رنگ سنگ آسیاب بود همه روی شنها ها چونبات بودند یکی از کارگرها گفت چه کسی آتش میزند و برخاست. سنگیک هایی را خواندم و قبل از اینکه آتش زده شود از آنجا فاصله گرفتم از کنار رودخانه که نگاه کردم بر ساحل شنی افره های زیادی هفر شده بود در اغلب حفره استخوان به خصوص استخوان جمجمه آشکار به چشم میآمد. به نظر میرسید خاکستری که بعد از سوختن بر استخوان ها با بادی که میوزید همراه و پاک شده بود. جمجمه که هداقهشان به گوشه ای از آسمان دوخته شده بود. ججمه که دندانهایشان را بر هم فشرده بودند و حالت حسرت داشتند. جمجمه را از قدیم زیر بادا باران گفتند. در دلم چون این گفتم حفره هایی بودند که داخلشان فقط از سرها و پاها استخوان سفید باقی مانده بود در عین حال حفره هایی بود که آتش سرخ فام آن نور میکرد مرده ای را به یاد آوردم و در حالی که جملات هاکو تسو را زمزمه میکردم از راه بالای ساحل برگشتم بدون اینکه متن را نگاه کنم توانستم آن را از حفظ بخونه